صف پنجم بخش اول دوسه ماه زندگی ما بدین دین حرف گذشت. هر هفته اقلاً یک بار گاهی بیشتر او را میدیدم. روزهایی که امید دیدار او را نداشتم دلم خالی بود. نمیدانستم چگونه وقت خود را پر کنم هر آن منتظرش بودم. در خیابانهایی که هرگز در آن آمده شد نداشت در ساعاتی که سریح میدانستم مشغول کار است، در خانههایی که اصلا صاحبان آنها را نمی همیشه منتظرش بودم و مجزه ها پلوی خود تصور می تا به این نتیجه طعی شود که من به دیدار او نائل می در صورتی که از همان ماه دوم کارهای زیادی به برروجو می کرد. من با ذوق و شغل بیان که کمترین ترس به خود راه دهم آنها را انجام می به من دستور داد که ماشین نویسی یاد بگیرم. آه چه کار خسته کننده است ماشین نویسی کشنده است؟ اما من یاد گرفتم. سه هفته ای تمام روزی هفت ساعت کار کردم. من از پشت کار خود در شگفت بودم اما این تنها راهی بود که برای من در زندگی باقی مانده بود. وقتی وظیفه ای را که به من ارجا کرده بود، انجام می دادم می دیدم که خوشحال است. و این خوشحالی او برای من مایه ای زندگی بود. مرا سر شوق می آورد. وقتی ماشین نویسی یاد گرفتم، نامهای به من داد و از من خواهش کرد که پانصد از آن رو نویس کنم. روزی که میخواست نامه را به من بدهد با او در سینما ملاقات کردم به من گفت نامه ای میخواهم به شما بدهم که پانصد نسخه از آن ماشین کنید گفتم چه خوشحالم از اینکه بالاخره به من کاری میدهید. گفت میدانید که کار بسیار خطرناکی است گفتم ماشین کردن که دیگر خطر ندارد گفت این نامه را منتشر خواهم کرد و اگر بفهمم که شما ماشین کرده اید، شما را میگیرند. گیرند و خیلی بد خواهد شد. گفتم من حاضرم بدهید به من همین الان بدهید. گفت همراه هم نیست. پرسیدم خیال می کردید که من ابا خواهم داشت از اینکه دستور شما را انجام بدهم؟ گفت نه می دانستم که قبول خواهید کرد. میخواستم با علم به خطری که این کار در بر دارد، اقدام کرده باشید. قرار شد که همان شب کسی نامه را به خانه من بیاورد. مطر نام خوب یادم هست. شاه می خواست در نزدیکی تون کابون املاکی را که قسمت مال مالکان بود، بخرد. معمورین املاک به دهاد ریخته بودند و مردم را به زور به محاضر می می‌بردند و از آنها امسا می‌گرفتند. عده‌ای از دهقانان پیش از اینکه نوبتشان برسد شبانه از تونکابان فرار کردند و به تهران به خانه یکی از قزت‌حالی رتبه که از همولایاتی های آنها بود و خودش هم چند ست جریب زمین داشت پناه بردند. قاضی چاره‌ای نداشت جز اینکه از دستور دستورمأمورین املاک به شخص شاه کند. این نامه که غریب پنجاه سطر بود نمیدانم به چه وسیله به دست آورده افتاده بود. من از این نام پانصد نسخه ماشین کردم و بر حسب قرار قبلی یک شب ساعت ده، موقعی که همه در خانه ما خوابیده بودند، مردی که حتی روی او را رو هم نتوانستم ببینم، چند تلنگر به شیشه اتاق من زد، و من طبق دستوری که داشتم نامه ها را چند نوبت به او دادم و او برد. چند روز بعد یکی از همین نامه ها برای پدرم رسید. پدرم که از ماشین نویسی یاد گرفتن و ماشین کردن من مشکوک شده بود. دوسه روز بعد سر شب نامه را به من نشان داد و گف دیدی دیروز دی پست برای من چه آورده است؟ گفتم نه آقا جان بدهید بخوانم چیست؟ گفت حالا باشد. موقعی که به اتاق خوابم رفتم پدرم دنبال من آمد. در رو باز کرد و گفت لازم نیست نامه را بخوانی تو خودتان را ماشین کردی. جوابی ندادم چون این کار غیر ممکن بود. دختر من با آتش بازی میکنی. و شرافت مرا به باد می دهی. اینجا فرنگستان نیست. کی تو را به این کار وا می دارد؟ گفتم هیچکس جان. اما حیثیت شما سر این کارها از بین نمی رود برعکس بیشتر می شود؟ گف خودت می دانی همینقدر بهت بگویم که این کار عواقب به وخی می دارد. از پریروز که این نام منتشر شده تا به حال اغاً سیصد نفر را در شهر تهران گرفتند وزیر پست و تلگراف سر انتشار این نامه عوض شد. شابهش فش داد و گفت برو خانه بخواب صحبت از تغییر رئیس نظمی است. اگر بفهمن که در این خانه ما ماشین تحریری وجود دارد تا فردا این خانه را با خاک یکسان می کنند. این هایی که گفتم اقراق نیست قبل از اینکه به اتاق تو بیایم ماشین تحریر را خورد کردم و در آبم انداختم تا هیچ اثری از آن باقی نماند ابتدا با استراب و ترس حرفای پدرم را شنیدم اما وقتی که گفت ماشین تحریر را شکست و از بین برده دیگر اختیار از دستم در رفت. خون صورتم را یک پارچه سرخ کرد. قلبم گرفت. رنگم پرید و تم ناجی که تا هم موقع برایم بی سابقه بود بهم داد. وقتی چشم باز کردم دیدم پدرم در اتاق نیست و مادرم پهلوی من نشسته و در اتاق بوی والریان میآید. من همیشه گرفتار ضعف اصاب بودم. همیشه حساسیت فوق مرا آزار میداد است. اما آن شب نخستین بار بود که حالت حمله به من دست داد. روز بعد اول سو وقتی پدرم آمده بود که از خانه بیرون برود تنها گیرش ها وردامو به او گفتم آقا جان ماشین تحریر را چه کرده اید؟ جواب داد گفتم که انداختم تو آبانبار. گفتم آقا جان برای حفظ رو حیثیت شما من از پول خودم همین الان یک ماشین تحریر دیگر میخرم. اما این را بدانید من دختر بزرگی هستم. اگر بخوایید به من زندگی را سخت بگیرید و مرا در کارهایی که میکنم آزاد نگذارید همین امروز از خانه شما میروم پدرم نگاهی پر از ترز به من انداخت چیزی نگفت و از خانه بیرون رفت فوری به او تلفن کردم و از او وقت گرفتم قرار شد شب موقعی معمول هم دیگر را دمه در سینما ملاقات کنیم حوادث شب پیش را برایش نقل کردم مفصل چرا که با پدرم رد و بدل کرده بودم گفتم و اشاره کردم که میخوام از خانه بیرون بیایم و نمیدانم تکریفم چیست. تهدلم آرزو میکردم و امیدوار بودم که او اگر مرا به خانه خود دعوت نکند اقلا موافق باشد که خانه برای خود ترتیب بدهم و آنجا بتوانم گاهی او را تنها ببینم. به او گفتم پدرم مرا بیاندازه دوست دارد و حتی اگر از خانه او هم قهر کنم باز حاضر است مخارج خارج زندگی مرا آبرومندانه تأمین کند. اما سر تکان داد و گفت نه برعکس حالا معلوم شد که این خانه پناهگاه خوبی نه فقط برای تو بلکه برای همه ماست. من حالا بیشترت بینان پیدا کردم. او حالا با تو سری سر دارد. البته می ترسد همه می ترسند. بعضی کمتر بعضی بیشتر. باید او را تدریججن وارد کنی. پدرت همی که از آن کسانی است که املاکش رو در مازندران از دست داده و آنچه او در تهران در عوض به دست آورده یک پنجمه دارای سابقش نیست. بنابراین از ته دل با مبارزه ما هم داستان است باید در این خانه یا با پدرت گرمتر بگیری و اینطور کارها را در خانه دیگری که به تانشان خواهم داد انجام بدهی. پدرت آدم مفیدی است. چند روز بعد ساعت دوی بعد از ظهر مردی که لباس کاسب کاران تنش بود پیش من آمد و ای از او در دست داشت و ما با هم به خانه در خارج از شهر رفتیم و آنجا در اتاق کوچکی که درهای آن با یک لایه پنبه میخوب شده بود. روی میز کوچکی ماشین تحریر قرار داشت. مرد کاسبکار به من گفت در این خانه جز من هیچ کس نیست. هر وقت کارتان را تمام کردید به من که پشت در نشستم بگویید تا به خانه برسانمتان. گفتم چه کاری باید انجام بدهم؟ گفتر در ماشین را بردارید و آنجا یک ورقه برایتان گذاشتن که ماشین کنید. امروز یادم نیست که آن نامه دوم چه بود. شاید همه همیت زیادی نداشت. اما از لحاظ مبارزه با شهربانی مهم بود چون عدهای زیادی گرفتار شده بودند لازم بود که نامه دیگری منتشر شود تا شهربانی به فرض اینکه چند نفر از اشخاص مسئول را گرفته از مشکوک و شود دو سه ساعت نشستم و کار کردم وقتی خسته و کوفته بلند شدم بروم نامی از استاد به من داد نوشته بود که لازم است چند روزی حتی تلفن هم به او نکنم این نامه خستگی مرا چند برابر کرد چیزی نمانده بود که از حال بروم دندان روی جگر گذاشتم و خودم را گرفتم که حال تشنج روز پیش تکرار نشود دلم میخواست بر خلاف دستور او کار کنم و صبح روز بعد یک راست به مدرسهش بروم و به او بگویم که دیگر اختیار از کف من دارد میرود نمیدانید وقتی دستور میداد که او را نبینم چقدر میترسیدم او به من قفه و قدرت میبخشید ظاهرا وقتی پیش او بودم خود را ناترس ترس داد میکردم. اما حقیقت این است که او منبع قدرت من بود. موقعی که را خواندم همانجا کمی روی پله نشستم. به کاسب کار گفتم میتوانی یک گیلاس آب خوردم برای من بیاوری؟ گفت نه. در این خانه هیچ چیز نیست. پرسیدم چرا را اول به من ندادی؟ گفت آقا فرمودم وقتی خواستی تشریف ببرید به شما بدهم. به فکر فرو رفتم. آیا پی برده که چه منتی بر من میگذارد وقتی کاری به من رجوع میکند؟ چرا نامه را قبل از ارجای کار نداده بود حتما دیگر میداند که چه اندازه گرفتارش شدم. میدانست از فرط نامیدی ممکن از کار را خوب انجام ندهم این را دیگر میدانست خود را باخته بودم دیگر لو رفته بودم حالا او بر من تسلط دارد زن ناگه ناگهان خود را از آن عالم گذشته بیرون کشید رو کرد به من که تمام مناظر حالا به خوبی در برابر چشم میدیدم و گفت راستی میدانید که آن کاسب کار که مرا به آن خانه برد که بود گفتم نه آقا رجب بود و این نخستین بار بود که من با او روبرو شدم تعجب کردم و برخلاف تصمیم خود سخن زن ناشناس را قطع کردم و پرسیدم آقا رجب نوکرش بله آقا رجب فراش مدرسی شما پس او از تمام روابط شما با استاد و کارهای مشترکی که داشتید اطلاع داشت و با وجود این لب نکرد چقدر من به او اصرار کردم شما نمی توانید تصور کنید که این مرد چه مرد سمیمی و با وفایی بود حرف استاد برایش وحی منزل بود مرید و از جان گذشته حاضر بود کور کورانه تمام موامر رفیق و رهبرش را انجام دهد ببخشید حرفتان را قطع کردم زن ناشناس به داستانش ادامه داد تصمیم گرفتم به خانه برگردم و صبح روز بعد یک راست به مدرسهش بلوم. و به او بگویم که چه چیز مرا فادار به این فداکاری ها می میکند دیگر از من را جذب کرده بودم بگویم که من هزاران خطر را حاضرم با جان و دل بخرم نه برای آن چیزی که او خیال می کند دیدم دیگر ادامه این فص برایم میسر نیست میخواستم تسلیم شوم چون این به نظر آمد که از راه خود نمیتوانم او را بروبایم همین که خواستم از خانه مخفی او بیرون روم آقا رجب گفت خانم چند دقیقه صبر کنید آقا فرمودن این کاغذ رو بسوزانید و مواظب باشید هیچ چیز بیشتان نباشد گفتم هیچ چیز پیشم نیست گفت باز یک بار دیگر کیفتان و چیپهایتان را بگردید گشتم و چیزی پیدا نکردم هر را که سوزاندنی بود سوزاندم و همین که خواستم در را باز کنم از دور صدای چرخ دروشکی آمد آقا رجب گفت بیایید برویم به طرف دروشکه اول من میروم پس از چند دقیقه شما خارج شوید در را محکم بکشید خودش بسته می شود. من یک راست میروم به طرف خانه شما و شما با درگاه بروید. به خانه که آمدم غغایی برپا بود. دیدم مادرم پشت در نشست و منتظر من است. فز سلطانم با چادر سیاه خالدارش همانچا پشت در چون باطمه زده او دارد با مادرم پچپش می کند. این فز سلطان هم بازی مادرم بود در خانه مادرم به دنیا آمد و وقتی مادرم به خانه شوهر آمد مونس و همه کارش شد. مرا پوزو کرده بود و چون هیچ کس را در دنیا نداشت تمام و محبتی را که در قلب رؤوفش انبار کرده بود سر من مصرف می کرد. همین که در زدم و فضل سلطان در را باز کرد و من وارد خانه شدم پیرزن با استراق گفت الهی شکر الهی صد هزار مرتبه شکر مادرم درم نگذاش که فزه سلطان حرف دیگری بزند وارد هشتی خانه ما که میشد طرف دست راست اتاق پدرم بود آفتاب پاییز بعد از ظهر تمام فضا را غرق نور کرده بود. از پشت پنجره انارهای سرخ و گرد گرفته میدرخشیدن. حوزه ما را آب انداخته بودند. باباداش باخچه ها را آب میداد. پیرمرد سی سال بود که در خانه ما کار میکرد. پدرم روی صندلی راحت در اتاقش نشسته بود و آرام سیگار میکشید. یک پیرمرد چاق و سیه چردهی که صورتش پر از چروک بود و سر تاس داشت روی زمین چهارزانو نشسته بود کاغذ ها را زیر رو میکرد. از مادرم پرسیدم این کیست چه میخواهد؟ مادرم گفت از نزد آمده، تمام اتاق آقا جانت رو زیر رو, رو میکند نگذاشتم که مادرم کلامش را ادامه دهد یک راست رفتم پیش پدرم مأمور شهربانی نگاهی به من انداخت و از جایش بلند شد و سلام کرد مثل آدمی که از همه جا بی خبر هستم پرسیدم آقا جان چه خبر است پدرم گفت میگویم چند روز پیش پست کاغذی اینجا آورده من که ندیدم حالا دارم میگردند. بل از کمی تعمر گفت، اینکه حرف است، نمیدانم چه میخواهند خواهند، بگذار بگردند، مرد چاق و سرتاس رو کرد به من از پدرم پرسید، اسم خانم چیست؟ من گفتم به شما چه که اسم مرا پرسید؟ پدرم دخالت کرد و گفت، بچه جان، تندی نکن، آقا مأمور هستند، او که تخصیری ندارد، بهش گفتند و حالا باید وزیفش را انجام دهد بعد پدرم مأمور آگاهی را مخاطب قرار داد و گفت دختر من است آن وقت اسم مرا گفت مرد چاغ صورت بدترکیبی داشت از قیافش پیدا بود آدم بدی است اما معدب حرف میزد. همین طور است که میفرمایید ما چه گناهی داریم فراش پاس گزارش داده که نامه‌ای به اینجا آورده است از این آدم‌های بی شرف زیاد هستند شاید عوضی گرفته روی این گزارش شما مورد سوء زن مقامات عالی قرار گرفته اید در صورتی که بنده خدمتتان ارادت دارم و میدانم که حضرت عالی از کسانی هستید که املاکتان را در مازندران به میل و رقبت به اعلی حضرت همایونی فروخته اید. البته صلاح مملکت را در نظر داشته اید. همه میدانند که در مازندران بهتر از مالک جاز وجود نداشته باشد شاید نامه به اسم شما نبود ممکنم هست که خانم کوچول آن را باز کرده باشم پرسیدم چه نامی؟ کی نوشته بوده است مرد که قیافه ابلهی داشت میخواست خودش را مهم جلوه دهد با چشمهای غیر گرفتش به من نگاه کرد و لبخندی زد میخواست به خیال خودش مرا امتحان کند اما تیرش به سنگ خورد من به او فرصت ندادم و به پدرم گفتم بگذارید از همه اهل خانه بپرسد که آیا دیروز فراش پس‌نامه اینجا وردی یا نه من یقین داشتم که کسی از اهل خانه ما نه مادرم و نه سلطان و نه من و نه بابا پیرمرد که همیشه حداقل بیست تا سی سال در خانه ای ما زندگی کرده و خانزاد ما بودند و از زندگی سیاسی پدرم در گذشته خبر داشتند دیگر این درس اول را بلد بودند که در این تور موارد نباید دم زد. بعد اضافه کردم به علاوه فراشه پست هم میتواند بگوید که نامه را به کی داده است. مردک گفت عرض کردم که فراش پست باید اشتباه کرده باشد و حتما عوضی گرفته. به علاوه خودش هم اقرار کرده که نامه را به کسی نداده و از لای در به درون خانه انداخته است آن وقت مرده که از هر جمله‌ی او ریا و دو شنیده می‌شد شرحی درباره خودش گفت که از قدیم به خانواده ما ارادت داشته و دلش خون است که با این تفتیش تفتیش‌ها اسباب عذیت مردم محترم را فراهم می‌آورد به خدا و خون گلوی علی قسم می‌خورد که هزار بار استعفا داده اما چه بکند که دست از سرش بر حکایت می کرد که روزی مجبور بود است حتی خانه برادر زنش را تفتیش کند. اما او معمور است ول معمور و معذور. در صورتی که او خوب میدانست که برادر زنش آدم سالمیست و اهل هیچ بامبولی نیست و عجب این است که برادر زنش هم تغاظای خدمت در وزارت کشور را کرده بود. تازه برادر زنش هم این را از چشم او میدید. از مجموعه گفته های او چنین نتیجه گرفته می که آدم و بیچاره است. و خودش هم می‌داند که بیهوده دارد این خانه را گردد. اما آخر یک نفر در این, شهر این نامه نامه‌ها را نوشته و باعث زحمت و بدبختی مردم شده است و شهربانی حتماً آنها را پیدا خواهد کرد ماشینی که با آن این نامه‌ها نوشته شده ماشین کنتیننتال است و الان صورت تمام این ماشین‌هایی که در عرض این چند سال اخیر وارد ایران شده در دست است و همین امشب معلوم خواهد شد که این ماشین تحریر کجاست میگفت در عین حالی کتاب‌ها را باز میکرد. آنها را ورق میزد و برمیگرداند گفت نخیر اینجا که چیزی نیست پدرم داشت كمی تند میشد و گفت پس دیگر میفرمویید ما چه کنیم مردک موضوع را عوض کرد و پرسید در این خانه ماشین تحریر ندارید اسم ماشین تحریر را که برد رنگم پرید منطحا او ابلهتر از آن بود که چیزی بفهمد من از جایم بلند شدم و میخواستم خارج شوم لحظه پشت به او کردم پدرم جواب داد من مرد قدیمی هستم. خودم خوش نویسم و دخترم هم تا چند سال پیش تعلیم خط می گرفت. ما کاری نداریم که ماشین تحریر داشته باشیم. خونسردی پدرم مرا سر حال آورد. برگشتم و تحسین آمیز به او نگریستم و گفتم آقا بگذارید همه ی خانه را بگردد. پدرم گفت من حرفی ندارم. بگردد. معمور آگاهی از من پرسید شما ماشین نویسی ولد نیستید؟ گفتم ماشین نویسی که بلد بودن ندارد هر کس بلد است پرسید پیشکی یاد گرفته اید گفتم یاد نگرفتم من یک انگشتی بلدم بزنم پرسید کجای انگشتی زده اید گفتم توی مدرسه ما ماشین تحریر داشتم و من آنجا زدم پرسید می توانید ماشین تحریر را به من نشان بدهید تو جواب دادم من چرا نشان بدهم من اقلا ده سال است که در آن مدرسه نبودم گفت من پرسیدم تازگی گفتم شما کی پرسیدید تازگی